حکایت تنی چند از رواندگان متفق سیاحت بودند و شریک رنج و راحت. خواستم تا مرافقت کنم، موافقت نکردم. گفتم این از کرم اخلاق بزرگان بدی است، روی از مصاحبت مسکینان تافتن و فایده و برکت دریق داشتند. که من در نفس خیش این قدرت و سرعت میشناسم شناسم که در خدمت مردان یار شاطر باشم، بار خاطر. ان لم اکن را کبل مواشی، از حامل القباشی. یکی زانمیان گفت، از این سخن که دل تنگ مدار، که در این روزها، دزدی به صورت درویشان برآمد و خود را در سلک صحبت ما منتظم کرد. چه دانند مردم که در خانه کیست، نویسنده داند که در نام چیست و از آنجا که سلامت حال درویشان است، گمان فضولش نبردند و به یاری قبولش کردند. صورت حال عارفان دلق است اینقدر بس چو روی در خلق است در عمل کوشو و هرچه خواهی پوش تاج بر سرنه و علم بر دوش در قجاگند مرد باید بود بر مخنس سلاح جنگ چه سود روزی تا به شب رفته بودیم و شبانگه به پای حسار خفته که دزد بی ابریغ رفیق برداشت که به تهارت می و به قارت میرفت. پارسا بین که خرقه در بر کرد. جامعه کعبه را جل خر کرد. چندان که از نظر درویشان قایب شد به برجی بر رفت. و درجی بدزدید تا روز روشن شد، آن تاریک را ی مبلغی راه رفته بود، و رفیقان بی گناه خفته، بامدادان با همه را به قلعه درآوردند و بزدند و به زندان کردند. از اون تاریخ ترک صحبت گفتیم و طریق عذلت گرفتیم، و سلامت و فلوهده. چو از قومی یکی بیدانشی کرد، نه که را منزلت موند، نه مه را، شنیدستی که گاوی در الفزار زار بیالاید همه گاوان ده را. گفتم سپاس و منت خدای را عزوجل که از برکت دربیشان محروم نماندم، گرچه به صورت، از صحبت وحید افتادم. بدین دین حکایت که گفتی مستفید گشتم و امسال هم مرا همه عمر این نصیحت به کار آید. به یک ناتراشیده در مجلسی برنجد دل حوشمندان بسی. اگر برکهی پر کنند از گلاب، سگی در ویفتد کند منجلا.